خوش خوشباور روزی بود و روزگاری بود یک شطور بود که در کاروان بازرگانی بار می برد یک روز که زیاد راه رفته بود و خسته شده بود با خود فکر کرد که دنیا بزرگ است و صحرا وسیع است و درختها و اللف سبز است و آبها در چشمه جاری است این همه حیوانات دارند توی بیابان به آزادی و راحتی زندگی می کنند. من چرا برای نیم من کاه و علف اینقدر جان بکنم تا کی کار کنم و بار بکشم؟ مدتی در این فکرها بود تا اینکه یک روز که فرصتی به دست آورد و بار نداشت خود را از شوتران دیگر کنار کشید. و از چشم ساربان پنهان شد بعد هم از بیراهه به صحرا رفت و تنها و آزاد برای خودش شروع کرد به چریدن و صحراها و بیابان ها را سیر و سیاحت کردن شطور خوشباور چند روزی خوش خورم گردش کرد تا یک روز به جنگلی سرسبز و باسفا رسید او نمیدانست که در این جنگل یک شیر شکاری زندگی میکند و یک گرگ تیز چنگال و یک شغال نیرنگ باز و یک زاغ سیاه چشم هم هستند که به شیر خدمت میکنند. دوستان شیر هرجا جا لقمه چرب و نرم و شکار چاق و چلهی سراغ داشتند به شیر خبر می و شیر آن را شکار می کرد و ایشان هم از باقی مانده خوراک شیر روزی می و در پناه قدرت شجاعت شیر درنده زندگی می کردند این را نمی دانست و همچنان تماشاکنان و علف خوران در جنگل پیش می رفت تا ناگهان با شیر روبرو شد اول خیلی وحشت کرد و خواست فرار کند اما فکر کرد اگر خودش را ببازد و شیر بفهمد که او ترسیده جانش در خطر خواهد افتاد پس ناچار جلوتر رفت و به شیر سلام و تعارف کرد شیر هم چون فکر کرد نگاهداری این شطور قوی حیکل مایه آبروی دستگاه ریاست اوست با شطر اظهار مهربانی کرد و پرسید مم، چرا تنها هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ شطور هم شرحال خود را گفت از بار بردن و کار کردن فرار کردم و می‌خواستم با آزادی و اختیار کامل زندگی کنم اما حالا که خدمت شما رسیده مهمان شما هستم و اختیار با شماست شیر که از حرف زدن شطر ترس او را فهمید جواب داد مم. حالا هم صاحب اختیار و آزاد هستی و اگر میل داشته باشی در همین جنگل با ما زندگی کنی ما تو را امان می دهیم. تو علف میخوری و سربار ما نیستی، ما هم احتیاجی به گوشت تو نداریم، چون شکار فراوان است و ما مهمان دوست و قوی هستیم و اگر بدخواه هم داشته باشی تو را حفظ میکنیم. شوتر از مهربانی شیر شکاری خوشحال شد و از بزرگواری او تشکر کرد و مدتی در همان بیشه به سر برد. میخورد و میخابید و شیر را دعا میکرد و روز به روز هم چاق و سرحالتر میشد این بود تا یک روز که شیر دنبال شکار میگشت در صحرا با یک فیل رم کرده به هم رسیدند و در میان ایشان جنگ سختی در گرفت و شیر مجروح شد و از چنگ فیل فرار کرد و نیمهجان خود را به لانه رساند و تا چند روز از شکار حیوانات آچسمان. وقتی شیر ناخوش شد، گرگ و شغال و زاغ هم که از سفره شکار او غذا می‌خوردند، بیخوراک ماندند. شیر که بزرگ و ها بود، از این بابت ناراحت شد و چون ایشان را غمگین گفت: خیلی ناراحتم که شما را گرسنه و رنجور می‌بینم. در واقع قصه بیغذایی شما از غم بیماری خودم بیشتر است. چون نمیتوانم برای شکار به صحراهای دوردست بروم شما بروید اطراف جنگل را بگردید و اگر در این نزدیکی ها سیدی پیدا می شود مرا خبر کنید تا بیایم و خوراک شما را روبراه کنم شغال و گرگ و زاغ از لانه شیر بیرون آمدند و برای مشورت در گوشه خلوت کردند گرگ گفت دوستان عزیز فکری به خاطرم رسیده و آن این است که این شطور در این جنگل قریب است و خیلی هم پرگوشت و چاق شده نه ما با او دوستی داریم و نه رئیس ما شیر از او فایده میبرد. اگر ما بتوانیم شیر را به کشتن شطور داریم تا چند روز شیر از شکار کردن راحت خواهد بود و ما هم به قضا می رسیم. شغال گفت. درست است که شطر رفیق منیست ولی شیر به این سادگی برای کشتن او به زیر بر نمی رود، چون او به شطور امان داده و او را مهمان خود می داند. ما هم نباید شیر را به خیانت و بدغوری تشویق کنیم این کار هم بد است و هم شیر قبول نمی کند زاغ گفت در این کار حیلهی باید به کار برد و شیر را راضی کرد حالا شما همینجا بنشینید و تا من بروم و برگردم و بقیه حرفم را بگویم زاغ برگشت و آمد جلوی شیر ایستاد شیر پرسید هان، چه کار کردید؟ سیدی شکاری چیزی پیدا می شود؟ همه جا را خوب گشتید؟ زاق جواب داد قربان ما خیلی جاسجو کردیم اما دیگر چشم ما از گرسنگی کار نمی کند و پای ما طاقت رفتن ندارد به طوری که شغال از گرسنگی ضعف کرد و گرگ هم حالش خوب نیست اما یک موضوع هست که اگر شما رضایت بدهید اجالتا همه ناراحتی ها رفت خواهد شد شیر گفت بگو ببینم چه فکری کرده زاق گفت حقیقت این است که این شطور در میان ما بیگانه است و بود و نبود او هم برای شما یکسان است او از بس در این بیشه خورده و خابیده از شاقی دارد می ترکد. بهترین وایده شطر این است که در حال حاضر برای رفع گرسنگی از گوشت او استفاده کنیم شیر نگذاشت زاق حرفش را تمام کند با خشم بسیار بر سر او داد زد و گفت خاک بر سر رفیق های این روزگار که انصاف و مروت ندارند و وفا و دوستی سرشان نمی شود. چطور ممکن است ما به شطور بدی کنیم در صورتی که به او قول دوستی داده ایم؟ شما چطور راضی میشوید این حرف را بزنید و مرا به عهد شکنی وادار کنید؟ زاخت جواب داد فرمایش شما صحیح است ولی دانشمندان گفتند که اگر لازم شود یک نفر را فدای یک جماعت میتوان کرد و همیشه نفع اکثریت را باید در نظر گرفت کرد حالا همشطور یک نفر است و ما چهار نفریم اما اینکه میفرمایید به او قول داده این برای آن هم یک راهی میتوان درست کرد که اسمش اهشکنی نباشد در دنیا همه کسانی که با هم جنگ می قبلا قولها و قرارهای دوستی زیاد دارند اما یک بهانه هایی پیدا می شود که عاقلان بپسندند و به ما حق بدهند به علاوه جان این شطور را شما تا حالا حفظ کرده اید وگرنه یا در قصابخانه کشته شده بود یا درندگان بیابان او را خورده بودند پس ما به گردن او حق داریم تازه شطور 100 سال دیگر هم زنده باشد آخرش برای خودش هم فایده ندارد چون که یک روز خود به خود می میرد ولی ما همه حاضریم جان خود را فدای سلامت شما بکنیم شیر از شنیدن این حرف در فکر فرو رفت و دیگر جوابی نداد هم زود برگشت و آمد پیش گرگ و شغال و گفت کارها را درست کردم درست کردم موضوع شطور را به شیر گفتم او قدری عصبانی شد ولی کم کم راضی شد حالا باید برویم شطور را رام کنیم و او را وادار کنیم که با ما بیاید و مانند ما نزد شیر اظهار فداکاری کند ما هم کارها را پیگیری کنیم و خودمان را یک جوری تبرئه کنیم و اشتهای شیر را تحریک کنیم و نتیجه بگیریم شغال گفت فکر خوبی است اتفاقا شطر حیوان آرام و راهی است اگر یک موش هم افسارش را بکشد دنبالش می میرود اگر به او آب و خوراک هم ندهند باز هم بار میبرد و دلش به این خوش است که زنگولهای به گردنش ببندند و ساربانها برایش آواز بخوانند بیایید برویم ما هم آوازمان را برایش بخوانیم پس شغال از جلو و گرگ از عقب و زاغ از دنبال روانه شدند تا نزد شطر رسیدند شطور علف سیری خورده بود و بر لب چشمه آبی نشسته مشغول نشخار کردن بود. توت چینان قدری به او تعارف کردند. بعد شغال گفت آها شطور ما آمده این برای حادثهی ای که پیش آمده است و که بزرگتر و فهمیده تر از ما هستی کمک بگیریم. شطور قدری خوشحال شد و جواب داد اختیار دارید بنده که قابل نیستم. شغال گفت نه خیر شما مرد بسیار شریفی هستید و همه مردم عالم از خوبی و وفاداری شما تعریف می میکن موضوع این است که هرچه باشد ما در این بیشه در پناه قدرت شیر زندگی می کنیم و روزگاری به خوشی می گذرانیم حالا اتفاقی افتاده و شیر مریض شده و توانش کار کردن ندارد و به زودی مالجه می شود اما چون او خیلی حق به گردن ما دارد ما باید با حرفهای خوب او را تسکین و آرامش بدهیم تا بعدها شیر دو دوستی و یک رنگی ما بیشتر اعتماد داشته باشد این است که میخواهیم اگر صلاح بدانی همه با هم برویم نزد شیر و هر یک بگوییم ما حاضریم سراجان خود را فدای شیر کنیم من بگویم حاضرم که امروز شیر از گوشت من نهار تهیه کند تو بگوییم مرا شام کند گرگ همینطور و زاغ هم همینطور و از این قبیل حرف ها گرگ گفت این کار یک فایده دیگر هم دارد و آن این است که اگر این کار را نکنیم بعدها مردم ما را سرزنش می کنند که شیر مریض شده بود و هیچیک از اطرافیانش حاضر نشدند فداکاری کنند زاغ گفت بله, بله, بله, بله همین دیروز بود که شیر خیلی غمگین بود و می گفت ما یک عمری برای حیوانات خدمت کرده ایم و حالا هیچ کس احوال ما را نمیپرسد پرسد عجب روزگاری است. شطور بعد از آنکه این حرفها را شنید گفت ظاهرا فکر بدی نیست و من تا وقتی از کسی بدی ندیده باشم گوش به فرمان او هستم. البته کین شطوری هم در وجود من هست اما این زمانی است که کسی بخواهد به من زور بگوید. بعد همه با هم راه افتادند و آمدند نزد شیر احوال پرسی کردند و قدری خوش آمد گفتند. زاغ سخن را شروع کرد. ای شیر پادشاه و صاحب اختیار ما همیشه در پناه عدل تو آسوده زندگی کرده این و شما به گردن ما خیلی حق دارید امروز که میبینیم ممکن است گوشت من برای شما مفید باشد در فداکاری حاضرم و آرزو دارم که وجود من قضای شما باشد شغال به صدا درآمد و گفت ای زاق سیاه چشم از خوردن تو چه فایده حاصل می شود و از این گوشت خشکیده چه غذایی به دست می آید اصلا زاق خوراکی نیست و شیر هرگز به گوشت تو احتیاجی ندارد شغال حرف خود را دنبال کرد و گفت اما ای شیر بزرگوار حقیقت این است که ما سالهاست از سفره نعمت تو روزی میخوریم و من هرچه دارم از دولت شما دارم در جنبازی حاضرم و آرزومندم امروز که خوراک کمیاب است وجود مرا خوراک خود سازید گرگ به صدا درآمد و گفت ای شغال نازک اندام تو را حیوان ترسو میگویند و گوشت تو برای وجود شیر مناسب نیست هرگز شیر شغال را نمیخورد در این موقع شیر سرش را تکان میداد و شغال از شرمندگی سرش را پایین انداخته بود. گرگ دنبال سخن را گرفت و گفت: ولی ای شیر بزرگوار، من که خود حیوان درنده و پرزوری هستم، برای سپاسگذاری از مهربانی های شما خود را فدا می میکنم. امروز که شکار تازهی به دست نیامده آرزو می کنم وجود مرا با خوشی و خرمی زیر دندان های مبارک خود جایی بدهید و افتخار این فداکاری را نصیب این چاکر درگاه بفرمایید. شغال و زاغ هر دو به صدا در آمدند و گفتند ای گرگ عزیز البته این سخن را از راه کمال و وفا صداقت میگویی اما گوشت تو باعث بیماری میشود و برای وجود شیر ضرر دارد و شیر باید غذای بهتری میل کند شیر حرفی نزد و گرگ سر خود را پایین انداخت بعد نوبت به شطور رسید شطور خوشباور که اول تا اندازه نگران بود از حرف دوستانش دلقوی شد و به امید اینکه دوستان از او خواهند گذشت گفت ای شیر بزرگوار من هم از مهربانی شما بسیار سپاسگزارم که از الفهای جنگل شما بسیار خوردم و حاضرم وجود ناقابل خود را فدای سلامت شما کنم و آرزومندم هنوز حرف شطر تمام نشده بود که فوری زاغ و گرگ و شغال یک صدا گفتن آفرین بر توی شطر که این سخن را از روی کمال انصاف گفتی و چون گوشت تو بسیار شیرین و است و برای مزاج شیر سازگار است بدان که با این وظیفه شناسی نامنی از خود به یادگار گذاشتی. پس همه با هم به جان شطور افتادند و شطور که از این ماجرا حیران و متعجب شده بود دم نزد تا او را پاره پاره کردند و خوردند این بود عاقبت شطر خوشباور که از کار کردن فرار کرد و به وعده شیرین دشمن فرید خورد Oh <laughs>